به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده محمد علوی سلام عرض خدمت همه همراهان و دوستان همیشگی کانال هزار افزان با شما هستیم با یکی دیگه از داستانهای کتاب فرهنگ افزانهای مردم ایران اما این داستان چشم پری. این افسانه یه روایت تازه ای از مبارزه مردم روستایی برای پاک و سمیمی نگه داشتن محل زندگی و کارشونه. روزگاهی توی این روستا چشم زلال جاری بود. مردم با کار دست جمعی خودشون برکت رو توی سراسر روستا و توی صفرهای خودشون گسترش میدادند. اما رفته رفته اون سمیمیت ها فراموش شد و تنها یک جوونی تونست که این گره رو باز کنه و مردم رو از رخوت و سنگی شدن نجات بده و دوباره چشمه زلال و کار سمیمانه رو به روستا برگردونه روزی روزگاری توی یک روستایی که کسی اسمش رو نمیدونه و امروز به چشم پری معروف هستش حادثه عجیبی اتفاق افتاد میگن روستای که چشم پری که توی اون روزگار یک نام دیگه ای داشت روستای آباد بود و توی فصل کشت و در فصل برداشت زن و مرد دوشا دوش هم دیگه کار میکردن و اون چیزی رو هم که از زمین به دست می آوردن میونه همه نسبت کاری که انجام داده بودن تقسیم می کرده. چنین بود تا اون حادثه ی عجیب اتفاق افتاد که یک آن همه مردم و حیوانات و موجودات از چرنده و پرنده و گیاه و نباد بی شدن و از حرکت باز پدر بزرگ می گفت روستایی که ما امروز به اون چشم پری میگیم تلسم شده بود و این تلسم تا هزار سال دوام آورد و شکسته نشد بعد از هزار سال جوونی روستایی به اسم مراد توی یک نیم روز تابستون از خواب هزار ساله بیدار شد ناگهان دست مراد به حرکت درآمد تیغه داست رو به ساقه های گندم فرود آورد از برخورد داس و شاخه ها یک صدای خشکی بلند شد و با فرود اومدن دوباره داس خوشه های زرد گندم فرو ریختند مراد کمر راست کرد و داسش رو تیز کرد دهقان ها توی گندم زار داست به دست خوشه گندم رو گرفته بودن و باید درو کردند، اما اونها هیچ جنبشی نداشتند. همه جا خاموشی بود و سکوت. مراد مهربون شگفت زده شده بود و دست خودش رو روی شونگ پیر پیرمرد دهقانی گذاشت که در نزدیک اون بود. اما دید که دهقان از حرکت باز مونده. با همه نیروی خودش دهقان رو تکان داد. دهقان پیر مثل یک مجسمه سنگی روی زمین افتاد و خوشهای گندم هم با صدای خشکی شکسته شدن اگرچه مراد یه جوان نیرومند و شجایی بود اما از اون چیزی که میدید قلبش توی سینه شروع به تبیدن کرد مراد شتابان چندتا تا دهقان پیر و جوان رو که اسماشون رو هم فراموش کرده بود با دستای خودش لمس کرد و نگران از گندمزار بیرون رفت مراد کنار گندمزار دستش رو حائل چشم کرد و به روز تا چشم دخت اینجا و اونجا بر فراز روزن بام ها برخی از کلبه ها دود توی فضا معلق شده بود و بی حرکت ایستاده بود و از جنبش نسیم هم خبری نبود مراد بی اختیار یک دستش رو روی بنابوشش گذاشت و فریاد زد آهای و تنها پاسخی هم که شنید صدای اسبی بود که از چراگاه می و بعد باز تا به صدای خودش مراد به چراگاه چشم دوخت چارپاها شوبانها، چوبان ها، سگای چوپان همه توی چراگاه تلسب شده بودن و مثل مجسمه بی حرکت بودن تنها موجود زنده اونجا اسب مراد بود که شیهه میکشید و با بیقراری به زمین می زد مراد توی امتداد نر به طرف روستا حرکت کرد بوتوها و علفهای کنار نر هم زیر گامهای مراد میشکستن و روی زمین میریختند سگی که از روستا به طرف چراگاه میرفت توی میانه راه خشک شده بود و از رفتن باز مونده بود زن جوونی هم که بار هیزوم به خونه میبرد و دختری هم که مشک آب رو به طرف گندمزار میبرد مثل مجسمهای توی راه مونده بود روی درگاه کلبه اینکه که دود روی فراز روزن بامش معلق مونده بود، چند تا بچه ای که تو حال بازی بودن از حرکت باز مونده بودن و مرغ های خونگی که توی حالت دبیدن به طرف خروزی که اونها رو به خوردن دونه فرا خوند همه از حرکت باز مونده بودن. توی کلبهی پیرزنی که کنار تنور نشسته بود و نون رو به سینه تنور میزد، توی همون حالت مونده بود نون روی تنور سرد بود و آتیش هم سرد و بیجان شده بود همه چیز بی‌جان و به سنگ تبدیل شده بود دهقانهایی که توی مزرعه به درو مشغول بودند بوته ها، درخت ها، پرنده ها، ها نهری که پیش از این از کوه به طرف روستار روان بود و حالا مثل یه آینه غبار قبار گرفته بود همه و همه از سنگ بودن سنگ بود و سنگ و سنگ مراد وحشت زده پشت به آبادی و رو به طرف کوهستان حرکت کرد دمگین و خاموش رفت و رفت تا به اسبش که وحشت زده به طرف اون میومد رسید مراد روی اسب بدون زینش نشست و اسبش رو به حال خودش واگذاشت اسب مثل باد به طرف کوهستان میرفت از تاخت و تاخت و تاخت و درر رو طی کرد رفت و رفت تا به دامنه کوه کنار آسیاب بده، و یک درخت پیری به نام تاوی رسید درخت تاوی که روی آسیاب سایه انداخته بود آسیاب خاموش بود و آسیابان پیر هم کنارش بی حرکت موده بود اما درخت تاوی زنده و سبز بود مراد خسته و حیرون از به زیر اومد برگوبار درخت رو با دستش امتحان کرد دید که درخت زنده است دسته بزرگی از برگبار درخت رو چید و اسبش رو به خوردن رها کرد خودش هم خسته و مونده توی سایه یه درختی روی زمین دراز کشید مراد خواب بود یا بیدار کسی نمیدونه اما صدایی از طرف کوه بلند شد بیا شتاب کن، بشتاب و بعد صدای دیگر رو شنید دو نفر با همدیگه حرف می زدن خواهر صدا شنیدی؟ گویی کسی ما رو از قلعه کوه صدا می زنی صدا رو نشنیدی؟ صدا رو شنیدم صدای پری چشمه بود پری چشمه جوانی رو که توی سایه سار درخت تاوی دراز کشیده و خوابیده به یاری میخونه این جوان کیه این جوان از روستایی دهیه که نامش رو همه فراموش کردند بعد از هزار سال امروز افسون این جوان و اسبش و درختی که ما برون آرامیدیم باطل شده و هر سه از خواب هزار ساله بیدار شدن هزار سال پیش دیو سیاه دشمن پری چشمه پری چشمه فراز کوه و روستای دامنه کوه و اون چرا که توی اون بود با افسونی بی جان و به سنگ تبدیل کرد از اون روز هزار سال میگذره و روستایی روستای دامنه کوه، چشمه، پری و حتی دیب سیاه توی خواب داستان عجیبیه. جوون و اسبش و درختی که ما کنارش خوابیدیم امروز از خواب هزار ساله بیدار شدن. پس پری چشمه و روستا چه وقتی از خواب بیدار میشن؟ چشمه و روستا جوون رو به یاری میخواندند جوونی که بر سایه درخت راز کشیده بود صدای ما رو میشنوه جوون باید بلند بشه و با اسبش چمی از برگبار این درخت تاوی رو بخورم برگبار فراوونی از درخت بچینند و اون رو با دو سنگی که روی درگاه آسیاب افتاده بکوبند مراد باید برگبار درخت رو که کوبیده توی بسته ای بریزه و با خودش به قله کوه ببره. جوون باید پری سنگ شده رو پیدا کنه و تن پری رو با این برگباری که از درخت تاوی به دست آورده زنده کنه. اگر این چیزی رو که گفتیم جوون انجام بده پری بیدار میشه و با بیدار شدن پری چشم پری هم به حرکت در میاد نهر آزاد میشه، سبزه ها بیدار میشن. دهقان ها بیدار میشن، حیوان ها، پرنده ها توی روستا بیدار میشن و زندگی توی همه چیز جاری میشه. پری چشمه کجاست؟ اگر دیو هم بیدار بشه جوون رو نابود میکنه. با دیو چیکار باید کرد؟ تا دامنه قله بلند و پری چشمه هفت منزل راه. بعد از هفت روز اسب و سوارش به کنار چشمه میرسن کنار قاری که چشمه پری از اون جاری هست دیو سیاه با افسون خودش به سنگ تبدیل شده وقتی پری از خواب هزار ساله بلند بشه دیو هم بیدار میشه جوون باید پیش از بیدار کردن پری تن دیو رو با یک سنگ بزرگی بشکنه و تکای شکسته شده یه تن دیو و قبار اون رو از چشمه دور بکنه و توی یک چاه یا گودالی بریزه تا پلیدی های دیو آب رو آلوده نکنه مراد عدسه ای کرد و چشماش رو به هم مالید از جاش بلند شد و به آسمون نگاه کرد آفتاب نیمروز میدرخشید، دو تا کبوتر هم توی آسمون حرکت میکردن و به طرف قله کوه پرواز می‌کردند. مراد برگوبار زیادی رو از درخت چید. با دو تا سنگی که روی درگاه آسیا بود، برگها رو له کرد و توی بسته‌ای ریخت. کمی هم از برگوبار درخت خورد و همه چیز رو به یاد آورد و روی اصمیش از تو به طرف قله بلند حرکت کرد. هفت منزل انتظار بود و نگرانی. راه بود و راه و قلعه بعد قله دیگه. هفت منزل خاموشی بود و سکون و سنگ و سنگ. مراد هفت منزل رو طی کرد. توی هفتمین منزل، دهانه قار رو دید و بعد مجسمه قولاسای دیو سیاه روی دهانه قار نمایان شد. برکه قبار گرفته چشمه چشم پری بعد از هزار سال توی پرتوه آفتاب نیمروز می درخشید. اما ماهیای توی برکه و آب اون برکه هیچ جنبشی نداشتند. اون طرف مجسمه دیو سیاه پریه سنگ شده بر دهانه قار بود و جایی که هزار سال پیش آب به برکه ریخت خواب بود مراد سنگ بزرگی برداشت و با تلاشی زیاد مجسمه سنگی دیو رو خورد کرد و تیکای اون رو توی گودالی ریخت و روی گودال رو پوشوند مراد بعد از فارغ شدن از کار دیو به طرف پری رفت. بسته خودش رو باز کرد و برگ و بار درخت رو روی تنه پری ریخت. کم کم تنه پری گرم شد. قلبش شروع به تبیدن کرد و وقتی چشماش رو باز کرد زندگی توی اون چیزی که خفته شده بود بیدار شد. آب جاری شد. ماهی درون برکه توی پرتو آفتاب نیمروز به حرکت در اومدن. توی نسیم حرکت می کردن. درختها به پیچ و تاب در اومدن و آب تا دور دست توی جویهای های چشم پری به جریان در اومد. پروستای چشم پری از خواب هزار ساله بیدار شد و زندگی بار دیگه آغاز شد. توی گندمزار کشابرزا که بیخبر از همه چیز بودن ها رو به حرکت درآوردند و به درو برداختند. پیرزن نون رو به سینه تنور زد و نون دیگر رو از تنور بیرون کشید. دود تنور خونه ها از روزن بام به آسمون آبی حرکت میکرد. بچه ها توی آسانه کلبه ها به بازی پرداختن و آوای شاد بچه ها تو دل کوه پیچید. دختر روستایی با مشکه به طرف گندمزار می رفت و زنی هم با بار هیزوم به طرف خونه برمیگشت گشت. پرنده ها به پرواز در اومدن و رمه و چارپاها و چروپان به حرکت در اومدن. شامگاه اون روز هزار ساله روستایی ده دهه چشم پری، شادمان از حاصل کار روزانه به روستا برگشتن تا شب رو استراحت کنند و فردا پرتوانتر از دیروز به کار بپردازن. دقانهای روستای چشم پری در جستجوی مراد همه جا رو جستجو کردند. اما از مراد و اسبش خبری نبود. توی روستای چشم پری اینجا و اونجا مردا و زنایی رو می دید که گاهی از اسب مراد و یال بلندش هنگام درو یاد میکردند پیرایه دهه چشم پری میگن توی هر چشمه یه پری زندگی میکنه و تا پری زنده است چشمه خشک نمیشه میگن پری و مراد جان چشمن و تا چشم جان داره جاریه توی سالهای خشک و کمبارون و سالهایی که آب چشم کم میشه روستایی دهه چشم پری گاب یا رو پای چشم قربونی میکنن و مراد اونها از این کار فراوون شدن آب و جاری بودن جاودانی چشمه است. هزاران سال میگذره و روستای چشم پری همچنان پابرجاست بعد از خواب هزار ساله چشم پری و جای زیادی به دنیا اومدن کار کردن، پیر شدند و مردن و زندگی همچنان ادامه داره. میگن دهقان های روستای چشمه پری بعد از خواب هزار ساله راه دیگری رو پیش گرفتن و روش های گذشته رو تغییر ددن. میگن قباری که از شکستن تن سنگ شده دیو سیاه در قله بلند روی آب برکه نشسته آب رو آلوده کرده. دهقان های روستای چشم پری بعد از خواب هزار ساله به تدریج دگرگون شدند و توی سالهای بعد درو کردن، شخم زدن، کار جمعی، به کردن، حرس کردن، آبیاری و همه این کارهایی رو که انجام میدادند به تدریج منسوخ شد. بعد از اون ماجرا دهقانها خونه های خودشون رو دیوار کشی کردن. گله ها رو ازی هم دیگه جدا کردن و آقولای جداگونه ساختن. هر کسی هم میکوشید که برخلاف گذشته سهم بیشتری از هر چیز رو به خودش اختصاص بده و اینطوری بود که یکی فقیر و دیگری ثروتمند شد. میگن تنها چیزی که به همون شکل اول خودش باقی مونده خونواده و زندگی خونوادگیه. و چنین بود که روستا اون بیالایشیه پیشین خودش رو از دست داد. هیچکس از نمیدونه چرا چنین شد. میگن همه بدیها از دیوه. آیا درسته؟ همینطوره؟ خب دوستان و همراهان عزیز به پایان این داستان رسیدیم امیدوارم که از شنیدن این داستان خوشتون اومده باشی تا درود دیگر بدرود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها